مراد از نزول قرآن تحصیل سیرت خوب است، نه ترتیل صورت مکتوب، آمی متعبد پیاده رفته است و عالم متحاون سوار خفته آسی که دست بردارد به از که در سر دارد، سرهنگ لطیف خوی دردار، بهتر ز فقیه مردم آزاد